کتاب کیمیا اثر نیما شهصواری تبعیز و تصفیه عمری به درازای تاریخ است که آدمیان در غهقرهای تفکرات پوسیده خیش زندگی می کنند و هر روز بر این نظم و هنجارهای آلوده به زشتی خیش می نازند. هر روز طبقه و ساختاری تازه بنا می کنند و در آن به قشری آفیت می‌بخشند و برخی را دوچار دردهای طاقت فرسای بیشمار کردند در گام نخست باید دانست که تقسیم بندی ها از کجا سرچشمه گرفته و تا بدین جا در این دیوانگی ها پیش رفته است این طریقت زشت چرا تا بدین سان در میان آدمیان قدرت و منزلگاه دارد؟ آیا از جوهره و ذات آدمیان است و یا بخشی که از دیگران هوشمندتر و قدرت پرستتر بودهاند توانستند با زیرکی این افکار را به خرد آدمیان دهند و سالیان مدید بر آنان حکومت کنند و در این سیر دووار دیوانگی بتازند و شاه شاهان لقب گیرند درد ما در نگاه نخست به همان قدرت پرستی‌ها گره می‌خورد و این تبعیض وحشتناک که در جای جای زندگی‌مان جاری و ساری سرچشمه از همان دیوانگی دیوانگی‌هاست آن روزی که آدمی می‌اندیشد خیشتن پست است و قدرتی فراتر از او حاکم بر دنیا ناگزیر است که برای پستی خیش مرهمی بجوید و باید دیگران پست شوند تا بزرگی معنا گیرد تصور کنید که همگان یکسان و در برابری زندگی کنند آنگاه چه کسی میتواند از دیگران بزرگتر لقب گیرد؟ آیا این والا بودن نیازمند پست پنداشتن دیگران نیست؟ در سرایی که همه یکسانند، والایی و بزرگی رخت می بازد و شاید خواننده که هر بار با نگاره های من روبرو شود بر ما بتازد که چگونه تا کمر به نابودی خدا و و هر بار در میان هر صحبت و نگاشته از خدا سخن میرانیم اما از همانان سوال می شود که آیا می توان به غیر از خدا که مفهوم والایی با نام یهو، عیسی و الله دارد و معنای گره خورده در قدرت و تبعیض هاست را در این میان جست؟ آیا می توان پیکان اتحام را به سوی او و این فرهنگ بیمار نگرفت؟ وقتی این نگرش تا این حد در جهان جاری و ساری است و میلیاردها تا انسان را تحت پوشش خود قرار داده و فرهنگ آمه جهان را ساخته میتوان به او نپرداخت این بر برگرفته از این نگاه چند قسمی و بالا به پایین است و باید که در برابرش ایستاد جهانی داریم در دیوانگی و زشتی هر بار تقسیمات ما را به راهی میکشاند یک بار جهان را تقسیم بندی و کائنات را قسم قسم می‌کنیم و زمینی می‌شویم. باری در زمین قاره میتراشیم و متعلق به فلان قاره شده‌ایم. کشورها به میان می‌آیند، در راهشان می‌کشیم و کشته می‌شویم. این بار سیر گردون دیوانگی ما را به انسان و حیوان می‌کشاند. ما اشرف مخلوقات نیشخندی به همه جانداران زده خون میریزیم و سروری میکنیم باز هم پیش رفته در میان انسانها تقسیمات آغاز میشود و مرد سالار و فرزند خدا خلیفه بر زمین و پادشاه و امیر میشود و زن موجودی حقیر، اسباب بازی مردان و وسیلهای برای رفع شهوت آنان خلق می شود دیوانگی همچنان ادامه دارد و شرح آن پایان نخواهد داشت درد ما از همین تقسیم آغاز می شود درد ما از این قدرت نفرین شده و دیوان پرور که اولین خشت زشتی را با تبعیض به مناره زلمت کاشته آغاز و زن مورد ستم قرار میگیرد و این زلمت شروع شده است به سرعت خدا از آسمان به زمین آمده او را کهتر و ناقص العقل خطاب می کند. درد زایمان و هیز ارزانیش می دارد و زن می شود زایده از دنده چپ مرد و برای تنها نماندن خلیفه دوباره خدا میقررد، دیوانه شده و فریاد میزند که این زنان عامل زشتی و اند و این بار نام شیطان را برازنده این موجودات میداند. و آدمیانی که خیشتن در دیوانگی غرقند حال نوازنده قهاری دارند که هر روز چنگی می نوازد به رقص همینان تا به بتازد و اینان بنازند وای که دیوانگی ها آغاز می شود زن سنگ سار می شود به جوخه های دارس پرده می شود خدا فریاد می زند و امیر و خلیفه بر زمین می تازد یک بار میگوید شما ساهره و جادوگریت به آب میاندازد و زنده زنده میسوزاند. یک بار به رخص پادشاه عالمیان او را به تنبیه میکشانند و هر روز دیوانتر از دیروز در زشتی غرق و پسستر می شوند و با خویشتن همه را نیز به این مرداب زشتی میکشند داد ما به آسمان رفته خدا فریاد میزند حال خیانت کار بودن و زنبارگی قانون میشود و و مسیبت که خداوند الرحمان و الرحیم سعادتمندی را در داشتن چهار زن عقدی میبیند و بیشمارانی کنیز که به دست مرد ارزانی داده است هر روز دیوانگی از پیشترها پیشی میگیرد و باز هم بر گذشته خویشن می افزاید و زنان و هزاری چون زنان در این قسممندی جانداران تبعیض و تصویه میشوند میسوزند که خدا و فرزندان خلفش در قدرت آسوده باشند. اما باز هم هستند آزادگانی که جامعه خرد برتن کرده و آزادانه به جنگ ددمنشان و زشت بیایند. زنانی آزاده که حق خیشتن را طلب کنند به صودای آزادی خیش و همجنسان بجنگند و جهان را یکسان و برابر سازند. اینان آمده تا کرسوی امید در آزادی را روشن نگاه دارند برابر شوند و نهراسند یک صدا به هزاری و هزاران و بینه خواهد انجامید میآیند که حقوق پایمال شده این هزاران ساله را پس تانند. و چه دلاورانه سر به جوخه های دار سپردند و باز هم از پای ننشستند و جهان امروز را از آن دیوانگی های پیشتر کمرنگ تر کردند اینان آزادند و زنند برای آزادی میجنگند، برای برابری در برابران تقسیم بندی ها و تبعیز ها ایستادند و هر روز فریادشان رساتر خواهد شد هرچند که جهان هنوز هم پر از زشتی است آیا نباید دوباره جهان را دریافت؟ نباید دوباره دید و این بار به اصل و منشأ پرداخت که جهان محتاج به بودن همه ما در کنار هم است آیا اگر ریشه این زشتی ها را دریافتان ریشه را از بن کند همه چیز درست نخواهد شد آیا همه به آزادی و برابری نخواهیم رسید آیا آن رویای والا نیاز است باز بخوانیم که زن و مرد را برابر کنیم؟ که آنجا همه برابریم و همه جانیم آری باید ریشه ها را دریافت و در برابر تصویه جانها ایستاد باید در برابر هر زشتی قد علم کرد ولی کن بار نه مسافتی را تنها که همه در کنار هم به سوی قله قدم برداریم باید که با هم بود و در برابر زشتی و نامساوات ایستادگی کرد باید ریشه قدرت را از جای کند که دیگر نابرابری وجود نداشته باشد کسی ارباب نباشد و این ارباب دیوانگی نکند و نفریبد باید با هم و در کنار هم یک و یکسان شد باید به قانون آزادی و این معنای والای برابری چشم دوخت که همه در کنار هم تا ابد برابر باشیم؟ در کنار این واژگان والا از آزادی و برابری هیچ جانی نکاهیم و نگذاریم دیوانگان به تخت بنشینند و هر روز تقسیم کنند، کوچک و کوچکتر شوند و سرآخر خیشتن به جای ماند و بریده سران بیشمار و بینهایت از هر جان را به زشتی بکشاند این بار به سودای برابری باید جنگید به صودای جهانی که همه جان باشند و برابر یکسان باشند و به آزادی قانون پاکش اداره کند جهان را برای جان جانان